خدا حفظ کن کنید ممنون ممنون آجید <تصفيق> السلام علیکم و رحمت الله که اجازه بدید خطبه را شروع کنیم السلام علیکم و رحمت الله عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و ونؤمن و نؤمن بهی و نتوکل علیه ونسلي ونسلم على البشير النظير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبل قاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم جميعاً من الان إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه و على في هذه الساعة و كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً بدليلاً وعيناً. حتی تسکن و اردک توها و تمت عوفی ها قویلا عسیکن و نفسی عباد الله به تق الله و اوخف وکن من اقابه شما خوبان و خودم رو دعوت به تققوا میکنم و از اغابش هرهیز میدارم مولا علی علیه السلام در خطبه هشتاد و شش نحج البلاغه هست فرمود فلیعمل الامل و فی ایام محله قبل ارحاق اجله حالا که زنده اید حالا که فرصت دارید قبل از این که برسد برای ابدیتتون با اعمال صالح توشه برگیرید و فی فراغهی قبل اوان شغله در زمانی که فراغت دارید دستتون باز هست قبل از اون که گرفتار بشید تلاش کنید توشه بایست را برای ابدیتتون بردارید که اون تقواست فا این الزاد از تقوا. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی قرآنی داشتیم با الهام از یا الذین آمنوهای قرآن در آستانه ماه محرم ماه ازای سالار شهیدان هستیم مناسب دیدم در رابطه با این جلوه سبک زندگی خدمت شما با الهام از آیات نورانی قرآن بحثی داشته باشم یا ایوهاللزین آمند تقو الله وابتقو الیه الوسیله وابتقو الیه الوسیله و جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون مؤمنین تقوا داشته باشید دنبال ابزار قرب به خداوند بگردید دغدغه دین داشته باشید در راه خدا جهاد کنید که راز و رمز راستگاریتون از این مسیر می‌گذرد الا تحقیق امروز در جامعه اسلامی ما توسل یک رفتار نهادین شده است یعنی مردم ما در ایام شخوادی اهل بیت اید قدیر نیمه شعبان از سمیم جان شادند و در ایام ازای آلله آشورا فاطمیه از سمیم جان اندوهگینند اگر کسی ایام دهه محرم آشورا ابراز ارادت به سالار شهیدان نکنه احساس میکنه کمبود داره احساس میکنه کم ورده این یعنی هنجار نهادینه این از جلوه های توسل هست از این رهگذر گذر مردم ما راه به قرب به خدا پیدا میکنن الا من شاء ایتخه و اله ربهی سبیلا دو مطلب در این رابطه در این خطبه کوتاه میخوام محضرتون ارز کنم خطبه اول این است که نباید تردید کرد در جواز توسل آیات فراوانی از قرآن و روایات متواتر و سیره پیامبر و معصومین نشون میده که توسل به معنای درستش سیره اهل بیت علیهم السلام بوده و جایز است سوره نساء آیه 64 سوره یوسف آیه 97 سوره توبه آیه 114 و آیه‌ای که خوندم آیه 35 سوره ماهده است یا ای یالبین آمنوا تق الله مؤمنین تقوا پیشه کنید و حق الی هل وسیله دنبال راهی بش باشید که به خدا نزدیک بشید امیر المؤمنین در خطبه 111 یازده نهج خطبه 110 ده نهج البلاگ میفرماید ایمان وسیله است نماز وسیله قرب به خداست زکات حج انفاق یکی از ابزار قرب به خداوند توسط به اهل بیت است. همول ال... قر و و الوسيله الى الله محبت اهل بيت اشغ به اهل بيت از اون ابزارهایی است که شما رو به خدا نزدیک میکنه از محبت اهل بیت شنیدن یعنی اهل بیت محبوب دیگه معنیش اینه اون کسی که گریه میکنه بر سیدالشهدا این گریه پیام داره پیامش اینه حسین جان اونقدر دوستت دارم زبان نمیتونه بیان کنه قلم نمیتونه بنویسه هیچ هنری نمیتونه ترسیم کنه فقط این قطره های زلال اشک من هست که این محبت رو میتونه نشون بده گریه بر و شهدا موضوعیت داره البته در پیش معرفت هم هست در پیش آشنایی با آرمان های عبی عبدالله هم هست شاید مراد برخی از عزیزان که گفتند گریه بر و شهده آور نیست مقصودشون این است که باید دنبال آرمان سید و هم بود و الا چیز که این انصر کیمیا گونه را مایه رشد نبینه شماها که ازادار سید و هستید بعد از مجلس ازایی سید و احساس اروج میکنید احساس نور میکنید به هر حال از جمله ابزار قرب به خداوند اهل بیت علیه السلام هستند در جهان اسلام کسی را نمیشناسیم با توسل در افتاده باشه بله یک گروهی به نام وهابی با تبعیت از حرفهای نادرست ابن تیمیه با توسل در افتادند و مبنا هم ندارند دلیل هم ندارند خود اهل سنت جواب حرفهای سست اونها رو داده اند اینجا اگر من بخوام ابراز ارادت هایی که بزرگان اهل سنت به اهل بیت کردند بگم دنیای حرف می از اصل مطلب نکته دوم اینه که توسل ابراز ادب به ساحت مقدس سالار شهیدان نه تنها جایست که سرمایه است سرمایه نفیسی که یک خروجیش این انقلاب اسلامی ماست تاریخ اول انقلاب ما پونزه خرداد سال چهل و دوست خرداد سال چهل و دو, دو محرم بوده یعنی اونایی که تا دیروز حسین حسین گفتن وقتی دوازده محرم فهمیدن فرزند حسین رو گرفتن سین زنان آمدن بیرون قم شده کربلا فیضیه قتلگاه با خون خود یاری کنی دین خمینی این حالا که فرستادید سه تا صلوات بفرستید این یه خروجیشه خروجی مقاومت امروز هم مدیون سالار شهیدان هست باید قدر این سرمایه را دانست افتخار کنیم به مجالس حسینی سعی کنیم مجالس حسینی حسین پسند برگزار بشه دو تا حرف اینجا دارم این است که امه خوشون مجه این پا می مثلا آممرغ بود که دهه محرم رو افتتاح کرد معمولا ازاداری ها بعد از این است که بزرگی شهید میشه یا از دنیا میره آشورا بوده. اما امام رضا به استقبال محرم رفت به استقبال آشورا رفت. دیگه محرم که شروع میشد امام رضا لا یرا زاحکن خنده بر لب حضرت نبود به استقبال برپایی با شکوه مجالس حسینی بریم امامان ما هم خودشون مجلس میگرفتن هم ترغیب میکردن که در مجالس حسینی شرکت کنید نکته دوم هم این است سعی کنیم مجالس آشورایی حسین پسند باشه مجلس مجالس آشورایی چهار رکن داره رکن اولش مردمند که صفابخش مجالس حسینی هستند و همه عناصر دیگر باید در خدمت این مردم باشند نکته دوم یعنی عنصر دوم بانیان مدیران حیعت ها هستند مدیران حیعت ها بانیان مجالس ازاداری وقتقو الیه الوسیله مجلس ازای سید و, و سکوی رشد مردم قرار بدن سکوی رشد جوون ها قرار بدن فقط براشون گرفتن مطرح نباشه دینشون رو به دین از این عرصه ادا کنند رکن سوم خطبای مجلس حسینی هستند خطبای مجلس حسینی رسالت ارتقاء فرهنگی مجالس آشورا رو به عهده دارند مطالعه کرده سخن بگند نمیگویم مطالعه نمیکردن نه سفارش آینده است در گذشته انشاالله مطالعه میکردن حالا هم دقیق مطالعه کنند. برای وقت ازش قائل باشند از بیان مطالب سست بیپایه اجتناب کنند آرمان های سید و بیان کنند. سیاست درستم بگن این روزها بعضی جاها من میبینم این حرفا مطرح میشه که نباید تو منبر سیاست مطرح باشه من اینجا پنج تا نکته نوشتم به اختصار عرض میکنم چون بنام بر اختصار مجبورم خیلی کوتاه و مختصر بگم یکیش اینه که منبر جای تبیین دینه، آیه میخواد روایت میخواد اخلاق میخواد اعتقادات میخواد بیان احکام میخواد ذکر مسیبت هم میخواد سیاست هم میخواد این که از اول منبر تا آخر منبر سیاست بگن ما موافق نیستیم منبر مطلوب چنین است مطلب دوم سیاست باید گفت از همون جنس سیاستی که به امامان معصوم میگیم سیاست العباد از همون جنسی که امام میفرمود دین از سیاست جدا نیست ما از سیاستی دم میزنیم که دین به سیاست خط بده نه سیاست به دین خط بده ما با حقوق بازی با کلک بیگانه با بازی های سیاسی بیگانه اسمش اسمشو اصلا سیاست نمیگذاریم سه سیاستی که باید ما رو منبر تحلیل کنیم رهنمودهای ولایت و رهنمودهای ولایت فراجناهیست فراگروهیت، ایشان به عنوان چشم بیدار امت ختم میده ما اونا بیان کنیم منبر و محراب جای بازی باندی بازی های جناحی بازی سیاسی نیست و نباید منبر و محراب سکوی حزبی این گروه و آن گروه قرار بگیره مطلب چهارم این است که گفتن مبانی نهزت عبی عبدالله مسئله مقاومت در راه خدا مسئله عزت ذلت ناپذیری مسئله خستگی ناپذیری مسئله درس و عبرت های یا آشورا تبین اینها، سیاسی نهضت سالار شهیدان هست و پنجم اینکه نباید هیئت‌های ما سکولار باشند نباید خطبای ما مدّاهای ما سکولار باشند سکولار یعنی حتی از سیاست به معنای درستش غریبه باشند سیاست به معنای درست را هم تبیین نکنند این سکولاریزه کردن حیعت هاست سکولاریزه کردن منبر و مداحیس این نکته سوم چهارمین رکن مجالس عزاداری مداهان اهل بیتند این هنرمندان آینی اونها هم رسالت دارند که بر شور و شعور حسینی بیفزایند روزه های مستند بخوانند اشعار پر محتوا بخوانند. این چهار رکن عزاداری که اگر رعایت بشه مجالس حسینی مجالس فاخر خواهد شد حسینیان عاشقان ابی عبدالله به استقبال برپایی با شکوه عزای حسینی میرند خوش به سعادت اونها که نوکر عبی عبدالله هم نوکری عبی عبدالله افتخار عالمین هست کاروان عبی عبدالله قدم به قدم دارن به کربلا نزدیک میشند عاشقان ابی عبدالله هم دارن خودشون رو آماده میکنند به استقبال عذای عبی عبدالله برند شیعان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین میبرد در کربلا هفتاد و دو زبه عظیم بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب کس نمی داند عروسی یا عذا دارد حسین السلام حسین علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین پربردگارا ما را نسل ما را زور مارا، ما را امت ما را تا قیامت حسینی بدار <تصفح> حسینی بمیران <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الكوفر فصل لربک ونحر ان شاناک هو الابتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان الله اله الا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ أَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عَلِيٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ و فاطمة فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین و الامامین الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین و علا المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الصالح الهجت القائم اللهم افتح له فتحا يسرا وانصره نصرا عزيزا و نسكم ونفسي عباد الله به الله و اخویف و کم من عقابه مولا علی علیه السلام فرمود اگر میخواهید در مقابله با لشکر جرار شیطان که شما رو به گناه وادار میکنه وایستید نسخش اینه به یاد مرگ بیفتید بدانید که مندنی نیستید روزی شما هستید و خدا باید پاسخگو باشید الا فضکروحاد من لذات به یاد بیارید نابود کننده لذتها رو و منقض شهوات بر همزننده ها رو فزکروها به من و منقذ شهوات و قاتل امنیات چیزی که قطع کننده ی آرزوهاست اند المصاورت للاعمال القبیه راهش اینه یاد مرگ ریشه های قفلت رو میخوش خانن. خطبه نود و نوه نحج البلاقه. در خطبه دوم افتدا تسلیت می کنم شهادت عزیزان زائر سالار شهیدان که در عملیات تروریستی در ناصریه عراق به شهادت رسیدند روزهای آخر عمر گروهک جهنمی و وحشی داعش است این حرکات مذبوحانه نشاندهنده دهنده استعصال این گروهک استکبار ساخته است تا مناسبت داریم اول های ولایی امروز روز مباهله است فردا روز نزول سوره ها که افتخارات اهل بیت علیه السلام هست خدا رو شاکریم که ما را محب به این خانواده قرار داده آغاز سال تحصیلی رو داریم بهار فرهنگی است فوزها دانشگاه ها مراکز آموزشی تربیت میکنند کسانی که مدیران آینده جامعه هستند ان با دو عنصر تهذیب و آموزش عالی امانتداران شایسته ای رو برای جامعه بپرورند هفته دفاع مقدس نزدیک هست هفته ای که با پسوند دفاع مقدس گنجینه عیسی رو فداکاری است انشالله اونها که بودند و در این فداکاری ها بودند این الگوها را بگویند تا نسلهای بعد الگوی دفاع، فدا الگوی فداکاری و دفاع از میهن اسلامیشون را بیابند مطلب چهارمم در آستانه مهرماه جشن عاطفه ها هست که از ابتکارات خوب و ستودنی هست بیش از 300 هزار نفر دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد هستند از مردم عزیزمون بر اساس های دینی که دارند انتظار میده این بچه ها را هم مثل فرزندان خودشون بدانند زمینه درس خوندن خوب را برای اینها هم فراهم کنند و چتر مهرشون رو مثل همیشه گسترده کنند سه تحلیل در این خطبه خدمت شما تقدیم میکنم تحلیل اول فاجعه میانماره به همدلله صدا و سیما در این عرصه خوب تلارسانی کرده و فجایع را میدانید نزدیک 400 هزار نفر را کشتن، سربریدن آتش زدن، آواره کردن، مینگزاری که نتونن به خونشون برگردن، این یک فاجعه بزرگ انسانی است. پنج مطلب در این رابطه هست. یک بدون تردید در پشت صحنه این جنایات رژیم صهیونیستی است و این رو من خطیب جمعه نمیگم که بعضیا بگن عادی اینها این حرف رو میزنن نماینده ویژه سازمان ملل گفته است که حامی اصلی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است این یک که تردیدی نیست که همون سلاحی که مسلمانان قزده را میکشه مسلمانان میانمار رو می کشه. دو اونجا قصه قصه دعوای مذهبی قومی نیست قصه یک دولت قصه یک ارتش که داره پاکسازی قومی میکنه این نکته ای است که باید توجه داشت که اونچه ما باهاش مواجهیم دعوای یک گروه با یک گروه نیست این دعواست که یک دولتی با قساوت تمام داره مسلمان می کنه سه رهبر این جنایات زنی هست که جایزه صلح نوبل را هم گرفته و رئیس بنیاد صلح نوبل میگه ما جایزمون رو از او پس نمیگیریم باید هم نگیرید اگر پس بگیرید ما شک میکنیم ماهیت شما است. ماهیت شما ماهیت سهیونیسیست در کشور ما ما به یاد داریم چه کسی را شما صلح نوبل به او دارید شما با اسلام چینه دارید و با قرآن داری و به یاری خداوند اسرام پیروز است 4 به همدلله در این عرصه کشورمون خوب موزه گرفت مراجع عالی قدر تقلید موزه گرفتند حوزه های علمیه کترم موزه اینار بیش از موزه گیری و محکومیت در عرصه سیاسی در عرصه اقتصادی وارد بشن فشار بیارن به این دولت بیرحم در ماده دو کنوانسیون 1948 نصف کشی جنایت تلقی شده زبان زبان بین المللی است با تمسک به همین ماده است که انتظار میریسه دیپلوماسی کشور ما تهاجمی در این عرصه وارد بشن نمیگن کشی کنیم که مقام معظم رهبری هم فرمودن ولی میتونن فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا جلوی جنایات گسترده این وحشیها رو بگیرند پنج این دفعه ما شاهد سکوت مجامع بین المللی کشورهای بنام اسلامی که پسوند اسلام رو با خودشون دارن هیچ شباهتی با اسلام ندارن در یمن آدم کشی می مسلمان کشی فعالیتی جلوی مسلمان کشی ندارن این مایه تعصف است و نقطه ششم این جنایات تلخه. بند بند وجودمون را میسوزانه اما گویای یک نقطه است که اسلام به صحنه آمده گویای این نقطه است که از اسلام وحشت دارند اینا اگر اسلام مرده بود فعالیت نداشت چرا این وحشیگری ها این معناش اینه ولو کره و ولو کره مشرکون به همدلله اسلام به سرعت در پیش هست و پیش میرود و به فضل خدا در این عرصه اسلام از که حرف اول را خواهد زد تحلیل دوم در رابطه با همه پرسی در اقلیم کردستان هست آرزوی دیرینه استکبار تشکیل یک اسرائیل در منطقه است. که البته این آرزو را به گور خواهند برد اولین مرحلهش همین تجزیه کردستان و همه پرسی در اقلیم کردستان هست به سراحت مقامات رژیم صهیونیستی نخست وزیر رژیم صهیونیستی حمایت کردند از همه پرسی ایران مخالفت کرده دولت عراق مجلس عراق مخالفت کرده ترکیه که همسایه اینهاست مخالفت کرده، رژیم سهیونیستی حمایت کرده، نباید مسئول اقلیم کردستان. اینا بفهمه که در میدان رژیم سهیونیستی بازی میکنه. مشروعیتش، محبوبیتش کم شده. داره عراق را فدای خودش میکنه. در خدمت رژیم دقیقا دقیقاً آنچه در حال انجام هست. نقشه‌ای است که اونها حمایت میکنند و تجزیه عراق از امیدهای دهه اخیر از وقتی که عراق از شر صدام راحت شد از اون زمان اینا در پی تجزیه عراق بودند امیدوارم مسئولان اقلیم کردستان سر عقل بیان دست از این توتعه صهیونیستی بردارند، توتعه <تصفيق> توتعه گروهک های تکفیری اولشون بود به هم, هم در ایران هم در سوریه گروهک جنایتکار داعش نفس آخرش را داره می بعد از اینکه این, این توطئه با دادن شهدای بسیار و فداکاری های بسیار از بین رفت اینا آغازگر توطئه جدید هستند و امیدوارم کشورهای همسایه و خود دولت عراق در این عرصه فعالتر تا این توطئه انجام نگیره و آخرین مطلب هم مسئله بازرسی از مراکز نظامی در ایران هست آمانو دبیر کل آژانس گفته است در بازرسی تفاوتی بین سایت های نظامی و غیر نظامی نیست حرف اینه نه در پروتکل پروتکل الهاغی نه در برجام اجازه اطلاع یافتن بر اسرار کشور به اجانب داده نشد این اولاً مراکز نظامی اسرار یک ملت ناموس یک ملت است به یاری خداوند نه مسئولان نه مردم ما اجازه فضولی به اجانب در این عرصه نخواهند داد اللهم هم مقفل والمؤمنات و المؤمنات و المسلمین و المسلمات اسلام و مسلمین نصرت انایت بفرما دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان توتعه ها خونسا توتعه گران نابود بفرما مقام معظم رهبری در پناهت موفق و معید بدار امام عزیز شهده در جوار رحمت خاصت قرار بده بر علو درجاتشون بیفزای فرج امام زمان ما را برسان بسم الله الرحمن الرحیم والعص ان الانسانه لفی خسر الا الذين آمن و عمل الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر و السلام علیکم و رحمت الله و برکتو